در مورد با مالکیت فکری و معنوی مخالفین این مالکیت و این حقوق که بر اثر این مالکیت وجود هم از سو که به وجود بیاد تمسک به ادله مختلفی کردند اولین دلیل طرح شد و اون این که این حقوق مالکیت مخالف با قاعده سلطه و اجرای حق سلطه نسبت به مشتری است یعنی اگر مشتری کتابی رو خرید، اون مال در اختیار او قرار گرفت و ملک او شد، انواع سلطه ها رو نسبت به او میتونه داشته باشد. که بنوان اولین دلیل مخالفین مطرح شد فناشوند انشالله در مدرک این قاعده تحقیق بشود آیا این قاعده مورد قبولی است یا نه و مستند و مدرک این قاعده چیست؟ البته ما روایت نبوی رو نقل کردیم و گفتیم حالا آن انشالله دوستان تقاضا داریم دوستانی که اینش حاضر بودن در راحتم مدرک قاعده بفرمایند این قاعده چه مدرکی دارد و مدرکش چیست but uh -huh. بله اجازه بفرمایید اول اصل قاعده رو ثابت کنیم اگر ثابت شد شد اگر نشد اون موقع دیگه بحث‌های بعدی معنا نداره دیگه فعلا ما اصل قاعده ای به نام سلطه آیا داریم که به واسطه او می‌خوایم جلوی مالکیت فکری رو بگیریم یا نداریم شما به چند مورد اشاره کردیم حالا برادرهای دیگر دیگرم که توجه دارن نمیدونم حالا وصل هستن یا نه بفرم مجموعا چند دلیل برای این قاعده اقامه شده ها، اون چیه؟ نیست؟ نه، سیره نه سیره مجموعه سنت صاحبید و کاشوه سنت خب، عدل چیه؟ پس اولین دلیل آیات قرآنی میشه یه مثال بزنی؟ حالا تقسیم بندی های مالکیتی، اصل آیات کدوم آیاتن؟ تجارتن ام یکی همین آیه لا تاکلو انوالکن بینکن بالباطل الا ام تکونت تجارتا ام تراز منکن خب، بحث را همین اموالکن از لا تاکلو انوالکن بینکم بالباطل که نشان میداده اگر چیزی مال انسان شد هر نوع تصرفی را می تواند بکند مگر تصرف باطل را این یه آیه که حالا تفسیرش مربوط به همون قواعد فقیه است دیگه چه آیاتی؟ اگر سوره نسا رو شما ملاحظه فر باشید در سوره نسا آیه دوم و آتولیت هاما اموال هم آن، اموال را به یتاما نسبت میدهد بعد میفرند و لا اموالهم و اموال هم اموال کم دوباره در اینجا اموال به کم اضافه شده است که نشون میده چیزی که مال انسان هست انسان هر نوع تصرفی میتواند بکند منتها مال یتیم رو شما نمیشه درش تصرف بکنید لا تأکر و الی هم آن نخورید منظور خوردن ظاهری نیست خوردن به عنوان یک داغ هست یعنی تصرف کردن سلطه داشتن و هر نوع اراده ای رو بر اون اعمال کردن دیگه آیه چهار سور که خدا می آتون... بله حالا آیه چهار هم بخونیم به پنج هم می رسیم انشالله و آتون نسائه صدقاتهن نحله شما صدقه ها رو مهریه ها رو به زنهاتون بدهید واجب است بدهید خب اینجا صدقه داره به هنه اضافه شده است که این صداق که همون مهریه باشد وقتی به صدقات هنه اختصاص به زن ها دارد بعد خدای متعال میفرماید اگر اونا بخشیدن که هیچی فکلوه و هنی ان مریعا نوش جانتان دوباره بحث در کلو اینجا خوردن ظاهری تصرف است. یعنی اگر اون اجازه ندن شما حق تصرف ندارید حق تصرف خانوم هاست شما مال اوه شو یک قروم شما حق ندارید بگیرید اگر دادن میشه تصرف کنید دیگر آیه 5 هست لا تحت و صفحه ها اموالا و جعل الله لکم قیام ها و اموالی که خدا به شما داده است در اختیار صوفه ها قرار ندهید یعنی اونو در تحت تصرف اونها نگذارید از این استفاده میشه که اموال که در اینجا آمده و به زمینه آیه ششم که باز اونجا اینطور داره وَبْتَلُّلْ خب. يَتَامَا حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُ النِّكَاهَةَ فَا اِنْ آنَسُ وَمِنْهُمْ رُشْدَنْ فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ اموال هم وَلَا تَأْكُلُهَ و من كان فقيرًا فليأكل بالمعروف خب اینجا دوباره بحث اموال علیتاما اموال اموالهم که میگه لا تاکلوها حق نداره تصرف کنید به نحوه اسراف و بدون اجازه خب بله اگر خود کسی که وسیع است فقیر است ندارد می تواند تصرف کند به مقدار متعارف و مورد نیازش این آیات اینجا و آیات دیگری داریم که این یک سری از آیات هست دلیل اول پس خود روایات است دلیل دوم آیات است دلیل دوم روایات می شود روایتی که ما مطرح کردیم گفتیم اولا نبوی است خب این روایت مدرکش کجاست دیریس و دو بله، دیریس دو که اونجا علام مجلسی این چنین آوردن و بدون سند فقط الله صلی و وسلم اینو فرمودند. البته این روایت رو گفتیم چگونه باید باش معامله کنیم؟ میشه بهش عمل کرد یا نه؟ و آیا روایت فقط منحصره به اینه یا روایت دیگری هم داریم؟ شروع این ضعف دلالت چه که فرمودید دلالتش مانند حدیث سلطه نیست؟ حدیث روایات خیلی بیش از اینها حدیث سلطه خب چون کلمه سلطه دارد نسته در مطلبه یعنی سلطه دارد که تحت اختیار اوست روایات دیگه کلمه سلطه نیامده خیلی روایات فراوان در ابواب مختلف داریم که محتوا و مضمون این روایت سلطه در اونجا هست با عبادت ما یسن آمایش ها یکیشه و لذا روایات فراوان داریم که همین مضمون رو بیان میکنه که از مجموعه سلطه به دست میآید. تو این روایت اناس مسلتون رو گفتیم چون هم نبوی و هم هم سند نداره مرسل اصلا نقل شده. لذا به حسب سند دو تا مبنا میشود. اونایی که شهرت فتوایه یا عملیه رو جابر ضعف سند میدونند. خب به این وسیله درست میشه. اما اگر کسانی قبول ندارن که قول تحقیق همینه که صرف عمل علما به روایتی یا فتحاشون مطابقه با یه است که سند نداره و سندن ضعیفه این جبران زعف سند نمی کند. البته در رابطه با عمل به این روایت ادعا شده فریقین یعنی همشیه هم سنی به این روایت عمل کرده اند و به مورد اتفاق یعنی شورت عملی بلکه کعنه انگار اجماع عملی است این دو تا دلیل که البته روایات هم مفصل است در بحث قاعده سلطه باید بحث میشه استفاده می شود که بله روایات میگم کسی که مالک چیزی شد انواع تصرف در اون مملوک خودش را می تواند انجام بدهد الا ما خرج به دلیل دلیل سوم اجماع از خب اجماع رو کیا نقل کردند شیخ خود عاملی نه حالا دو تا مسئله ما صبح سر که کیا ادعای اجماع که داره میگه علیه هر اجماع خودش نرفته اجماع به دست بیاره اون میگه ای نقل شده که این اجماعی اما خیلی به عنوان اجماع محسل خودشون ادعا کردن هم که فرموری شیخ و همیتونم مفید و بعد دیگر هم از قدما در کتابهای فراوانی داریم که آقای رفتن ادعای اجماع کردن ما رفتیم میگشتیم دیدیم همه علماء بل اتفاق عمل کردن به این روایت و این روایت رو قبول دارن اونتا مشکلش هم توی فرمودی چیه این اج... مدرکی نیچی الان شاید علما به این مدارک تمسک نکرده باشن ما کجا بدونیم به همین مدارکی که تمسک کردن دست ماست به این تمسک کردن و فتوا دادن نا چند قسمه در درجه اول یا تعبدیه یا مدرکی اجمای تعبدی آن است که من نمیدونم چرا اینجوری فتوا دادن همه فتوا دادن چرا این فتوا که همین با هم متفقه از کجا در آمده اجمای مدرکی اون که یا یقین دارم سند فتواشون این ادله است که دست ماست و یا احتمال میدم یعنی اجماع میشه محتمل المدرک یا مقتول و معلوم المدرک یا محتمل المدرک خب حالا چرا در جایی که محتمل المدرک باشه در اینجا ما باز این اعتباری نداره اجماع مدرکی، این دلیل چیه؟ بلا احتمال میدم من معلوم نیست شایدم دلیل دیگری داشتن من نمیدانم دلیلش این است که در بحث حجیت اجماع گفته شده این ادله اربعه ای که معروف است به عنوان کتاب سنت اجماع و عقل که معروف در کتاب ها نوشتن و میگن و همین اصطلاحات کتاب کار می روند. اجماع میگن دلیلی است که در عرض کتاب و سنت و عقل نیست در طول این هاست یعنی ما اگر در جایی از آیه قرآن داشتیم دلیلیست اجماع نمیرسه اجماع مال مرحله است که ما دستمون از همه چیز کوتاه شده نه آیه است نه روایتی عقل هم در این مسئله حکم نمی کند اون موقع میگیم آقا دلیل ما اجماع است حالا اونایی که قبول دارن اجماع حجته و کاشفیتی از رعی معصوم یا از قول معصوم هزیرف خیت هم از تو که به اجموع میشه و کتاب و سنت و عقل در عرض همه حجیتش ولی اگه تنافی باقی رو باید برین باب تعادل و تراجی. اونجا باید برین مسئله حل بکنی یا آیه با روایت به حسب زاهر تعارض دارن یا آیه فرض کنید با حکم عقل به حسب زاهر تعارض دارن یا یه روایتی با حکم عقل تعارض چه باید بکنیم هم عرضن ازا میرن در بحث تعادل و که این دو طورت متعارض را، این دو دلیل متعارض را چه کنیم؟ اجماع این چنین نیست. خجیت اجماع متوقف بر این است که من از کتاب و سنت و عقل دلیلی نداشته باشم. لذا، در اون اونجایی که من احتمال میدم، و رو یقینم ندارم، احتمال میدم آقایونی که چنین فتوهی دادن و فتواشون الان مطابقه با یه روایتی یا با یه آیت احتمال داره مدرکشون او باشه بازم این اجماع اعتبار ندارد چرا؟ چون طولیه و وقتی که سرسله سند دست منه خود آی دست منه این اجماع اصلا نوبت به او نمیرسد جایگاهی ندارد ولی این اجماع میشود مدرکی یعنی یا معلوم المدرک است یا محتمل المدرک لذا ورو اجماع به عنوان دلیل سوم اقامی شده اما چون مدرکی است حتی اون کسانی که اجماع رو حجت میدونن این اجماع رو حجت نمیدارن اجماع تعبدی فقط میان حجت یعنی نه مدرکی معلومن و نه محتملا در بین نیست که این فتوا را به او بدهیم اون موقع تازه به اجماع میرسد و چون در اینجا هم آیاتی داریم هم روایاتی داریم حالا حکم اقلا برقایی بود که اینها دلالت بر این حکم مذکور میکنن که قاعده سلطه باشه نوبر به اجماع نمیرسه خب دلیل چهارم چی بود؟ عقل عقل چی میگه؟ دلیل چهارم بنای اقلا گذاشتنیشون حالا بنای اقلا غیر از عقل. حالا به اونم میرسیم عقل چی خب به عقل هم تمسک شده؟ گفتن نه تنها اغلا بلکه عقل هم حکم میکند که هر مالکی حق هر متصرفی در مال خودش رو دارد خب حالا عقل منظور چیه؟ و چگونه میگوید؟ متصرف دلیل عقل رو مهند ندارم حالون رفاقه که دارن چی بیان کنن که بالاخره به حکم عقل هم تمثب جسته شده چطور عقل حکم میکنه؟ عقل میگوید حتی به کمک زمائم دیگر اگر کسی مالک شیعی شد یعنی طبق از مالکیت او را بر مالی پذیرفتیم. یعنی طبق این فرض شما نمیخوند در مال دیگران تصرف کنیم. منجور تصرف مالک است در مال خودش خدای عالم عالم رو برای چی خلق کرده سرخ خرالک و مافل عرض جمعی مافل عرض و مافل سماوات که انسان از اینا استفاده ببرد و استفاده کند و منفعت شامل حال او مشمول حال او بشود خب حالا اگر از راهش راهش مالکیت است. حالا اگر کسی مالک شد حالا چه از دلیل عقلی چه از دلیل نقلی مالکیت مالی برای فردی ثابت شد که میشه فرض مسئله عقل میگوید او حق تصرف دارد چرا؟ چون اگر مولایی که اینجا منظور خداست مالی رو در اختیار عبدش قرار داد منظر از عبد اینجا انسان است. نسان های هور و به او گفت که این مال توست این ملک توست در اختیار توست عبد ملکیت حقیقی عرفانی مد نظر نیست بله به حساب معنای ارفانی جز خدا هیچکس مالک هیچ چیزی نیست زیرا در نماز هر روز میخوانیم و مکرر مالک یوم الدین یعنی خدا مالکیت دارد که این مالکیت ظاهر می شود در قیامت دین یعنی معاد یومم یعنی در مرحله، مقام، ظهور معناش اینه که خدا مالک است، معنیش که قیدرتب. هیچ کی مالک نیست آیات دیگر هم داریم حالا در هم مرک هم مرک لی من الیوم لله الواحد قفار در روز قیامت هیچ کس مالک چیزی نی. هیچ کس بر هیچ چیزی سلطه ندارد هزاس مرکی به ملک است. خب خدا میگه مالک یوم الدین بله ملک حقیقی از آن خداست این چیزایی که دست ما همه امانته موقتی اسم ملکیت روشه و واقعا ملکیت تکوین یا حقیقی که ما نداریم ما خودمونم مال خودمون نیستیم خدا خلق کرده پس منابراین ملکیت موجود ملکیت های فقهی و اعتباری و حالا چه اعتبار اغلایی چه اعتبار شرعی من این ملکیت ها خب عقل میگه اگر چیزی ملک تو شد معناتش این است که همه نوع تصرف بودی درست بکنی چون مولا به تو اینو داده حالا خدا اینو رو در اختیارت قرار داده اگر بگیم این ملک توست ولی فلان تصرف را نمیتوانی بکنی این با مالیت و مالکیت مال منافع دارد مگر خود مولا تخصیص بزنه میگه تا این حد تا این مقدار تا این حدود و شرائط اما اگر مولا حرفی نزده و بستر مواردی که مولا منع نکرده است اون میگه تو مالک این مالی این عقل میگه لازمه این است که همه نوع تصرف رو در اون میتوانی بکنی حالا سوال این چه عقلیه که اینجور حکم می‌کند این مهمه این که میگم از احکام عقلیه است یعنی موضوعی دارد محمولی دارد نسبت حکمی دارد که جزمن و یقینا می شود به ملکیت اون مال برای شما یعنی شما حق تضاحنون دارید این چه عقلیست که چنون حکمی میکنه ها عقل فطری تو اسم دیشجیه عقل فطری میگن اصطلاح فلسفی شیه که در علم و منطق اینا زیاد به کار میرود عقل عملی ما دو تا عقل داریم عقل نظری که از ها و نبودها هستها و ها بحث میکنن عقل عملی از چی بحث میکنه ها بایدها و نبایدها شایده ها و نشایده ها الزام ها و ترخیص ها که به این عقل عملی فطرت هم میگن عقل فطری هم میگویند. اینکه هر مالکی هر نوع تصرفی در مال خودش میتواند بکند این مقتضای عقل عملی است مقتضای فطرت انسانه اگه این مال مال منه و خدا به من داده من این هر کاری میتونم بکنم هر و تصرف انجام می‌شوید این چهار تا دلیل دلیل پنجم که فرمودی چی باشه بناء اوغلا خب بنا اوغلا بر چی است بنا اوغلا همون دیر سیر اوغلا است که توضیحش را فرمودید تو مبحث اصول بله که اوغلا مبناشون و ممشاشون چیه منشه عملشون مکخص نیست حالا بردی میگن حتما باید بخور من فرصه عقل فطری باشه نه منشه رو من نگفتم ممشا، دب سیره بنای عملیشون بر چیه بنای عملیشون بر این است که قبول کردن این قایده تسل بطری نه بیان این مدار دقیق تر بیدی که نتیجهش بشه قایده سلطه نه نه که معلوم شد اغلا با کسی که مالکی یک مالی است ها مال چه دیدی دارند، چه رفتاری نسبت او انجام میدن چه نسبت به خودشون چه نسبت به دیگران آن. یعنی بناشون یعنی بناشون بر این اگر کسی مالکی شد او عملا هر نوع تصرف رو میکنه و به دیگران اجازه نمیده در مال او تصرف کنند و خود او بالعکس اگر دیگری مالی که مالی بود به او حق میدهند و عملا هم دو او حق داره در هر چیزی که مالش رفتار بکنه و من حق ندارم در او تصرف کنم مگر ازم بده یا مثلا مگر شاره یک جای رو ممنوع کرده باشد و بگه نمیشه یا خود او اغلاه بله مگه خود اوغلا بله اگر مзоваهم دیگران باشد شما سرفه رادو تلویزیون تو نمیتونی میگه آقا این تلویزیون مال منه خونه خودمه رو هر چقدر بخوام بلند کنم نه اوغلا میگن مادامی که این سلطه شما منافات با سلطه مردم بر مال خودشون نداشته باشه بر حقوق مردم نداشته باشه حالا اون استثناءات چی بحثش رو اصلا تو میگه نفقه شما رو گرفتن به زور هم گرفتن و میخوان بدوزن ببرن ما میریم میگیریم و دنیا اینو میپذیره و خود اون کسی هم که این کار کرده خجالت زده میشه که چون اومده تصرف در مال دیگری کرده و حق هم نداشته بکنه و این کسی که الان میره کشتی خودشو میره میگیره و میاره اینا همه بهش حمله می‌کنن که اینا مال اینا ملک اینا و آمریکا غلط کرده دیگری غلط کرده این کارو کرده و محکومه و سرزنشش می‌کنن بعد حتی اگر قدرتشون برسه جریمهش هم میرن میکنن و او رو مؤاخذه مالی هم میکنن بنای اغلا اینه خب این پس دلیل پنجم پس قاعده سلطه رو ما بلاخره چیکار بکنیم؟ بپذیریم یا نپذیریم؟ بس, بس این بادر با کدوم دلیل استاد؟ بوارات بشیم اگر دلیل لفظی باشه از نحوه برخورد ما باهاش فرق متولد دلیل غیر گفت آیات که لفظی بود روایات هم که لفظی بود حالا اجماع و عقل و بنا و این سه تا بودن اما آیات و روایات که لفظی بودن دیگه سند, آه... سند... سند روایت که مشکل داشت، اصلیه نرکل بقیه... که هیچی روایت متعدد فراوانی در عباب مختلف داریم ما که حالا تو قواد فقی مفصل آمده یعنی پنج دو ده دو بیستان نیست که از اینا استفاده میشود که مالک اختیار داره هر متصرفی در مالک خودش بکنه بل جمله پس از یا بل جمله در بل جمله بله اطلاق عموم داره بگو که هر کسی نسبت به مالو الا ما خرج به دلیل البته مگر اونجایی که اوغلا خودشون من بذارن یا شاره گفت در این حد نمیتونی انجام بدی و الا اگر چیزی مال و ملک مثلا اسراف من نمیتونم آقا خونه خودم از اندر بی دلیل خراب کنم مالمو تو جو آب بریزم ولی اون ملک خودمه ولی اون مال خودمه چون مصاق اسراف مثلا یا تبذیر نه اینو اجازه نمیده البساط که اوغلا جهائر استثناء کردند مواد استثناء کار نده کسی که مالی دارد غیر از اون ها هر نوع تصرفی میتواند بکند مسلطون یسنعو ال آخر حالا تعبیرات خیلی مختلفه لهو ما تمکن و تعبیرات مختلفی که در روایات آمده هر چی که قدرت دارد و در اختیار اوست میتونه انجام بده منطقه نسبت به روایت اناس مسلطون ما قبلا گفتیم این روایت رو جور دیگری هم نقل کردن چجور بود اون جور دیگرش؟ بعضی یک زمیمه هم به این روایت داشتن. چی می که قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم انناس مسلطون علا انوالهم و انفسهم این انفسهم من بررسی کردید که کجاست و آیا تو روایت آمده یا نیامده؟ آمده؟ نه بنده، ندیدم انفاس هم رو، همون فقط تا انواد هم رو دیدم اونم که آن چند تا کتاب و چند تا روایت دیدید چما؟ من مراجعه کلی داشتم آسان، رو چیز کنم بعد، در روایاتی ما کلمه انفاس هم نداریم این انفوسه پس از کجا اضافه شده؟ در کتب فوقه ها یعنی فوقه ها وقتی گفتن بعضی این اضافه رو آوردن بعضا بدون اضافه آوردن ارا اواله بعضا اضافه کردن ارا اواله و انفوسه این طور روایات ایران نشده یعنی چه روایاتی که در کتب شیعه که اصلا نیست در کتب شیعه اصلا این روایات نه و سنت آمده اونجا تازه مسل آمده تو روایات هم که از طریق اهل سنت آمده انفوسه هم وجود نداره فقه ها آمدن اضافه کردن البته این کلمه انفوسه همی که اضافه کردن میتونیم براش مدرک پیده از خود قرآن از آیات های میشه انسان نسبت برخوره خود اونم یه تفسیری داره تازه تسلطه بر نفس معناشی و حتی چه حدودی؟ ولی کاری نداریم تو اون روایت نوضی ما به عنوان روایت انفوسه نداریم. حتی به کاری ما نداریم جون بحث مالکیت و حقوقی بحث صحیح که مال حساب میشود یا نه خب یقینا نفس حساب نمیشود چه تو اون باید کلمه انفسهم باشد چه نباشد به بحث ما دخلی ندارد به ارتباطی ندارد لذا این قاعده سلطه یه قاعده است که پنج دلیل بر او اقامی شده و از مجموع این پنج تا استفاده می شود که چرا ما قاعده به نام قاعده سلطه داریم که مضمونش این است اگر کسی مالک مالی شد حق هر نوع تصرفی در اون مال را دارد الا ماخرجه به دلیل خب پس اصل قاعده درست حالا آیا این قاعده سلطه بر مشتری تطبیق میشه و این کتابی خریده مال دیگه رو فروختن بهش و اینم میخواد بره روش چاپ بکنه چون سود داره منفعت داره حالا آره یا فرض کنید کار تبلیغان رو نداره سود معنبی براش داره بره چاپ بکنه و در اختیار دیگران قرار بده دیگران رو استفاده کنن و عنوان تبلیغ مثلا که این کتاب رواج پیدا کنه منافع ماده امکان نباشه. اما ناشر یا معلف گفته خیر حق چاپ و نشر متوقف بر اجازه مؤلف است یا اجازه ناشر است این قاعده سلطه گفتن در رابطه با مشتری معنیش که شما اجازه لازم نداری هر کار میخوای بکنی بکن چرا چون این کتاب مال شماست یکی از تصرفات اینه که اون رو نشروش بدی پس نه، این سلطه رو شما داری و میتوانی این کار رو انجام بدهیم. البته ارز کردیم چون این قاعده سلطه را برای نظر موافقین مالکیت فکره هم گفتن بحث بیشتر چون بعد میاییم که آیا این اموال شامل و حقوق هم می شود یا نه. کلا اصلا ملکیت و مالکیت ما چند قسم داریم؟ مالکیت فردی، مالیت اجتماعی، مالکیت حکومت و نظام عام فرق اینا با هم چیه بحث مفصلش باشه مورد موقعی که نظر موافقین رو می‌خوایم بدیم که خصوصیات و جزئیاتش اونجا بیاد که انشالله وقتی اونجا آمد دیگه از چه قطعی می‌گیریم که آیا واقعه سلطه نسبتش با بای و مشتری مساویس یا نه آیا رو گوش شامل مشتری می‌شود یا نه آیا شامل بای می‌شود یا نه و نتیجه او چه خواهد شد انشالله برای هفته دیگر دلیل دوم را بررسی می کنیم دلیل دوم مخالفین را و اون این است که گفتن ولو بنای اغلا بر این که هر مالکی در مال هر رو بکنه ولی بناه اغلا موقع حجت است که شار او را امزا کرده باشد و شاره حق مالکیت فکری را امضا نکرده است. میشه دلیل دوم آقای مخالفیم انشالله برای هفته بعد روی این دلیل دوم کار بشه و بحث بشه که واقعا چنین قاعده ای ما داریم یا نه و بر مورد ما تطبیق می شود یا نمی شود. خب بحث فقه فعلا تا همین جا کافی است در خدمت دوستان هستیم اگر سوال و مطلبی هست انشالله بحث بکنم. حالا <متحدث> استاد فرمودید که ای انشاءالله در جلتیات بعد روش صحبت مطاق برای مطاق بخواستم بگم که المؤمنون اند شروط هم این رو چجوری میخواهند جواب بدن این که به مخالف داره؟ نه این حالا انشاءالله در همین بحث امضای شریح حالا یه مدار رو بحث میکنیم که المؤمنون اند شروط هم این دلیلیست برای مخالفین آیا؟ این شرط حساب می شود یا نه؟ یعنی دلیل مستقل دیگریست که آیا واقعا خود این ادعایی که پای کتابا می نویسن حق نشر محفوظه است حق نمی دونن چاپ محفوظه است آیا خودش عقد است آیا ایقا است آیا عهد است آیا شرط ضمن عقد حساب می شود آیا شرط مستقل حساب می شود؟ ها آیا اصلا شرط هست یا خودشه عقد و ایقا است در ضمن ادلینه کاملا مشخص می خود بحث شرط یکی از ادله است که ادله اوفو بالعقود که او رو مستقل باید بحث کنیم که آیا این ادعاهایی که و این که چیزایی که می نویسن اول کتابا عقد حساب میشه عهد است یا شرط است یا هیچ کدوم نیست اصلا ان شاء الله در سمندلی مفصل خواهد آمد علی خدمت شما بهشون داشت که درست ما داریم چیزایی که اون اون قسماتی ما رو اخلاق <تصفيق> و الشریعات یک یه هم این تطبیقش با چهار کلی شریعت که چیزی نه داره آره با بله، دو تا مفتبه، یکی اینکه ما همینو گفتیم گفتیم برو الناس و سرکتون به تنهایی دارد آن از مجموع روایات به دست میرم این و فقط هم روایات میز آیات هم از, از اتفاق و عقل و غنا و و سیره و, سیر و اجماعی هم هم هست ولی زبا بله مجموع رو در نظر بگیریم چرا انسان اتمینات پیدا میکنه قاعده سرطه داری و بزن مسلمان اما مناسب با زوق شریعت هست و عقاب اون یه دلیل دیگه است در رابطه با مناسبات با. مزاق شهر می آید که ما از مزاق شعر کشف می کنیم که شارم این چنینه همینو قبول داره لذا اینو دو دلیل مستقل حساب می شود یک خود دلیل خاص به عنوان آیه و روایت بله گاهی ما یه روایت بهترین چیز ثابت نمی کنیم اصلا سند نداریم ولی روایاتی که مضمون رو دارن داریم پس این روایت می شیم و معتبر لذا چرا؟ ما میویم قبولش میکنه و به جامعه مشترک بین این دون روایات که یکی سنده که نداره نه اون خصوصیات که در راحت زعیف آمد تو خاصی باشه که در روایت دیگر نیمازه به با اون نمیشه همد. اما اصل جامعه این قاعده سلطه داشتن چرا؟ به راحت معتبر یا آیاتی داریم مطلب ثابت میشه مجموع میتونه ثابت کنه نظاما یک بحثی داریم در رابطه با قرائن. که گاهی یک روایت گاهی موقعا ده تا روایت ضعیفه هر ده تا چون ضعیفه اندازه سندگی مشکل داره ولی چون ده تا روایت در ده تا موضوع مردم ده تا بابه اینا رو هم بذاریم از تراکم این احتمالات ضعیف برای اطمینان حاصل میدید که چرا در شعیت باشه کانونی داری نیست که این بحث احتمالات میشود و تراکم احتمالات باید بله. آره متأسف این یه مبنای دیگه یه مبنای دیگه‌ست که نه آقا ما دلیل لازم داریم ولی صد تا دلیل ضعیفم بیاری اینا نمیشه در حال که نه خلاق و بناموغلاوقت در یه مورد چیزی احتمال ضعیفی بود اما در کنار او و همراه او امور دیگری بودن که اینا رو با هم ببینیم انسان اتونال به مزو پیدا و بنابراین هم او غلاهم همین اشاره م از اتواز نکرد لازم معتبر ولی اون یه دیگه الازوا من اون مربوط به بناوسه اوغلاص عقل به و عقل شامل همه میشه یعنی چه پیغمبر چه معصوم غیر محسوم با دید دید قدیم جدید که حکم عقل است سر مثل بنا اوغلا اگر شو به بنا اوغلا بکنید بینو اوغلا میگه این عمل در مرعا و مسمع معصوم بوده و اگر اشکال داشت باید میگفت که مردم به خطا نرند وقتی خودش هیچی نمیگه بینو اوغلا رو در این مورد خاص در این موضوع خاص میاد سکوت میکنه ما از سکوت او کشف میکنیم امضا او رو اما این که خودشار هم یکی از اقلاست ها این فرق میکنه با اونجایی که بگیم این از سکوت کرده از سکوت وارا اینچار را این دسته اقلا باید بس کنه فرق بین استفاده رعی مسوم از سکوت او با اینکه خودش یکی چون از اقلاست و کار رو انجام میدهد اگر بایدونم خودش یکی از اقلا کار رو میکنه او دیگه میشه سنت او دیگه میشه حدیث در باب تقریر آه از باب فعل از باب فعل محصول میشه اما اگر از باب سکوت بود از باب امزا بود نه اون میشه تقریر میشه یه باب دیگه البته محصول هم قولش حجته هم فعلش حجته هم تقریرش بله بله منطقه اونجایی که بگیم او خودش هم یکی از است، پس این کار رو میکنه و کرده این میشه فعل المحسوب. این یه تو باب سیر اغلا نمی آید نه ما فقط از سکوت او که او دیده و مخالفت ن کرده روش جدید هم نیبرده کشف میکنیم که قبول دارد و امضا کرده یا جلو. امتحان جلو به موااصل کرده یا نه اگر اینا براهوط به ماصل هم جل نکرده اینو قبول دارد این عمل به مورد بود تعییل بود که فروششه در بحث به نوقللا اونجا گفتیم یه این های اشاره دو قسمه هست. یا جعله حکمی کنن یا نه فقط از عمل او و از سکوت او صحت عمله اغلاف همیده میشه قصر بباشید در بحث مانیت مالکیت فکری اتراف اون رو منچه به چه شد ؟ بحث نشده ما فعلا گفتیم اون کسایی که مخالفت کردن از فقهای های ما شایدن بزر حبودان ها بیاییم عدله اینا رو بگیم خوب تعریف بکنیم هرچند میگن دقیق نقل بکنیم آخرین زورشونو رو بزنن بعد وقتی تو نظر موافقی بس مطرح میشه آیا مالکیت فکری اصلا درست است اصلا مال حساب میشه یا نه؟ چه بست اون اصلا مال نمی دانند بلی زمان شاملش نمی شود فرض کنه حق است یا نم مال می میگن می ما انصراف دارد به مالهای مادی شامل مالهای معندی و فکری اینها نمی شود اینه تو بحث موافقی نشانلا بحث میکنی که آیا این تملک معنوی و فکری که وجود دارد مال حساب می شود یا نه اگر هم شد آیا واقعا عدل منصرف از اینه یا نه تحت ادله مال باقی میماند تعریف مال باید اونجا بشود که نتیجگیری بکنیم که بالاخره ما از چه راهی میخواییم ثابت کنیم که حقوق فکری داریم ملکیت فکری هست و به دنبال حقوقی هم به او تعلق میگیرد اشکالی ندارد مثلا در مورد و با, با کتابشون گرفتیم در و اجازه که مالش مبسلطنیم. اگه شد انجام میکیه ما از اینجا میتری برناییم برشترین درش ایمان اردوان شرک میشونیم چون از امور امدتر از امور هستند. فقط شو روم بده کویودی شروطی خصوصیات رو گذاشت بعضی جا تو معاملات اما اصلش یه عمر یعنی اوغلا است یعنی دیگه دین دخالت نداره لذا معاملاتی که بین مسلمان مسلمان مسلمان و کافر الی آخر میشواد بعد بعده ما می‌خوایم از نظر اسلام حقوق پیدا کنیم ما از کسی گرفت فرق نمی‌کنه چه مسلمان چه کافر با هر مذهب و عقیده‌ای عقید. اصلا ملحد باشه اصلا دین الهی هم قبول ندیشه خود اون به تصرف در که ما چاپ بکنم اون به جهاد است که خود جهاد مملک است چون وقتی غنا غنی آمد غنیمت خود به خود ملکی از می شه اگر جنگی باشه اگر نباشه مستقیم همش برای پیغمبر فیل. احسن طور اگر ثابت مال است و انصراف هم در کار نیست بله و خیلی این کار رو کردن یعنی در جنگ جهانی دوم که آلمان خوب بخواست دنیا رو بگیره هم این موشک های رفته، مال آلمان بود هم اختراع بوم به در همون جنگ جهانی دوم آلمان نزدیک به اختراع بمب به هم بود اونتاها امریکایی ها اومدن هم دانشفندانش رو خریدن هم وسایلشون توی کشتی گوشتن بردن آنپروژ کار کردن به اون بعد هم نتیجه رسید و بعد هم توی جاپن دومان استفاده کردن و در جنگ رو پیروز شدن موشقهاشون همینکون اون بعد اینکه آلمان تسکر شد و جنگ به پایان رسید آلمان قسمت شرق شعوروی، قسمت آلمان اروپا از سیستم ها و برنامه ها بود و ترهای موشقی همینکون قسمت شرق شعوروی آمدان رو دوزیدن. بردن و پیشرفت کردن و یه اقمار فرستن بالا اینه همه شمال آلمان بله مال فکش رو گرفتن بلات اونا همه کافر بودن اونا سر اسلامه که یکی مسلمان آنشاره وقتی که چیزون میل کرد به او اجازه نه هم رو کنه یا نه باید بعض از تصرفات اجازه بگیره ببینیم مصنف مثلا چی میگیم معلف چی میگی؟ و همثال ایمان خب حالا باید بحث